فصل پنجام لحظاتی است که خواب نیمروز از سر میپرد حتی حرکت پنهانی و پوشیده و جزی حشرات درست در آن لحظه خاص متوقف میشود سیر طبیعت دوچار وقفه میشود آفرینش بر لبه هرج و مرج میلغزد و زنها برمیخیزند لودگی میکنند گلوزی روبالشی بر هایشان جا انداخته است. از گرما و کینه نفسشان بند آمده است و با خود میاندیشند هنوز در ماکوندو چهارشنبه است آنگاه میروند و گوشهای دور هم جمع میشوند و خواب و واقعیت را به هم پیوند میدهند و با هم در بافتن شایعه به توافق میرسند گویی که پارچه بسیار بزرگ گسترده ای را همه زنان شهر با هم می بافند اگر زمان درونی همان آهنگ زمان بیرونی را داشت ما اکنون زیر نور درخشان آفتاب در وسط خیابان تابوت را همراهی می کردیم بیرون وقت در می بود شاید انگام شب می بود یک شب سنگین ماه سپتامبر با ماه و زنانی که در حیات هاشان در پرتو نور سبز رنگ نشستند و گرم گفتگو هستند و در خیابان ماخائنها در ضل آفتاب این سپتامبر خشک و تشنه هیچکس در مراسم تافین دخالت نخواهد کرد انتظار داشتم که شهردار در تصمیمش برای مخالفت با این تشریفات ثابت قدم باشد و ما بتوانیم به خانه برویم بچه به مدرسه برود و پدرم کفش چوبی ها را پایش کند و از سرش آب خنک به لگن شست و چکد و کوزه ی پر از لیموناد یخیش در سمت چپش باشد. اما حالا جور دیگری است. پدرم باز هم خودش را متقاعد کرده که نظرش را به شهردار که ابتدا فکر می تصمیمش تغییر ناپذیر است تحمیل کند. بیرون شهر که خود را به تأثیر طولانی و یک دست و بی تأثیر زمزمه ها سپرده غوغایی برپاست و خیابان پاک و تمیز که هیچ سایه‌ای بر خاک تمیزش دیده نمی شود از زمانی که آخرین باد رد پای آخرین گاو را از آن پاک کرد دست نخورده مانده است و اینجا شهری است که هیچ آن نیست با خانه های دربسته که از اتاق ها چیزی به گوش نمیرسد. جز غلغل غل سنگین و یک نواخت کلماتی که از قلب‌های شریر برمیخیزد. و در اتاق بچه نشسته شق و رق به کفش‌هایش نگاه می آرام آرام نگاهش به سوی چراغ کشیده می بعد به روزنامه ها دوباره به کفش‌هایش و حالا تند و سریع به مرد به ویخته. به زبان گاز گرفتش، به چشمان شیشهای و سگانش که دیگر هیچ شهوتی در آنها نیست، سگی مرده بی هیچ اشتهایی، بچه به او نگاه می کند. به مردی که خود را دار زده و حالا زیر تختها دراز کشیده فکر می کند، حالتی اندوهگین دارد و آنگاه همه چیز عوض می شود، دستی، چهارپایه ای را از توی مغازه سلمانی بیرون میآورد و با آینه و پودر و آب معتر به درون مهراب کوچک می برد. دست ککمکی و گنده می شود. دیگر دست پسر من نیست. به دستی گنده و ماهر بدل شده که با سردی و خصتی حساب شده تیغ را به چرم می کشد و تیز می و در این حال گوش هم همه فلزه فلز آب داده را میشنود و سر می اندیشد امروز آنها زودتر خواهند آمد زیرا در ماکوندو امروز چهارشنبه است و بعد آنها میآیند در سایه و های درگاه اتاق با حالتی افسرده و نگاه زیر چشمی بر صندلی مینشینند و پا روی پا می اندازند دستهاشان بالای زانبانشان به هم گره خورده نوک سیگارشان را گاز میزنند نگاه و همه ی حرفهایشان درباره یک چیز دور میزند، پنجره بستی روبرو را تماشا می کند، خانه ساکتی که سینیور و رو روکا توی آن زندگی می کند سینیور روکا نیز چیزی را فراموش کرد، فراموش کرد پنک را خاموش کند و از اتاقهایی که به پنجرهایش پرده آویخته می گزارد. عصبی و حیجان زده از میان زر و زیورهای دوران بیهوده و بیحاصل و پر از عذاب بیوگیش میگذرد میگذرد تا خود را با هستلام سش قانع کند که پیش از فرارسیدن ساعت تدفین نخواهد مرد در اتاقهایش را باز و بسته میکند، کند منتظر می شود تا ساعت دیواری آبا و اجدادی از خواب نیم روزش بیدار شود و با نواختن سه ضربه حواظه او را آشفته و پریشان کند. این همه در حالی که حالت چهره بچه تغییر می کند و او دوباره همچنان سخت و کل شق می شود حتی به اندازه نصف زمانی که زنی صرف می کند تا برای آخرین بار چرخ خیاطی را به حرکت در بیاورد و سرش را با تره های بلند کند طول نمی کشد. تا بچه باز شق و رق شود و حالتی متفکرانه به خود بگیرد زن چرخ خیاتی را به گوشه ای ایوان برده است و مردها همچنان که رفت و برگشت کامل تیغ را روی چرم تماشا می سیگارشان را دوبار گاز زدند و آگوئدا همان زن شل برای بیدار کردن زانوی بیهستش آخرین تلاش را می و سینیور را ربکا دوباره کلید را میچرخاند و فکر می‌کند چهارشنبه ماکوندو برای تدفین شیطان روز خوبی است اما در این هنگام بچه دوباره حرکتی می‌کند و زمان باز عوض می‌شود وقتی چیزی حرکت می‌کند می‌توانی گویی زمان گذشته است اما قبل از آن نه تا زمانی که چیزی حرکت می‌کند زمان ابدی است عرق پیراهنی که روی پوست بدن بازی می کند و مرده این ناپذیر و منجمد در پشت زبان گاز گرفتش برای همین زمان برای مردی که خود را به دار آویخته نمی گذارد. زیرا اگر حتی دست بچه حرکت کند او متوجه نمی شود. و در حالی که مرده متوجه این حرکت نیست زیرا بچه هم چنان دستش را حرکت میدهد، دهد، بایستی یک دانه دیگر تسبیحش را انداخته باشد. سینیور را ربکا که در صندلی تاشوی خود لمیده، حالت گیج و آشفته دارد و قرغ تماشای ساعت دیواری است که بر لبه دقیقه فرارسنده ثابت مانده و آگا وقت این را دارد؟ اگر چه روی ساعت دیواری سینیور را ربکا حتی سانیه ای هم نگذشته است که یک دانه دیگر از تسبیحش را بیاندازد و با خود فکر کند اگر دستم به پدر آنخل می رسید این کار را می کردم انگاه دست بچه پایین میآید و تیغ روی چرم حرکتی می کند و یکی از مردها که در خونکای آستانه در نشسته می‌گوید. باید حدود سه نیم باشد درست است؟ آنگاه دست باز میستد ساعت بار دیگر بر لبه دقیقه فرارسنده خوابیده. تیغ باز هم در محدود فلزیاش درنگ می کند و آگوئدا هنوز در انتظار حرکت تازه دست است تا پایش را دراز کند و با دست های گشوده و زانوان دوباره راه افتاده و شتابان وارد صندوق کلیسا شود و بگوید پدر، پدر و پدر آن خلک از بی حرکت ماندن و از پادر آمده همچنان که زبانش را دور لبهایش و مزیه چسبنده کابوس کفت ریزه میچرخاند با دیدن آگا ایدا میگوید بدون شک این یک معجزه است وان وقت بار دیگر با خواب آلودگی مسحک خیس از عرق به دورور میچرخد آگوئدا به هر حال حالا برای آمرزش خواستن برای ارواح برزخی وقت مناسبی نیست اما تکان و حرکت تازه بینتیجه است پدرم به اتاق میآید و دو زمان با هم تطبیق میکنند دو نیمه با هم میزان میشوند به هم میپیوندند و ساعت دیواری سینیور را ربکا متوجه می شود که بین خصت بچه و بیتاقتی بیوه زن گرفتار بوده است، ونگا با حالتی آشفته و مسترب خمیازه میکشد. در خاموشی غیر و شگفتنگیز لحظه فرو می رود، و پس از آن خیس از اصاره زمان، زمان دقیق اصلا شده، بیرون می آید، و به جلو خم می شود، و با وقاری تشریفاتی میگوید ساعت دقیقا دو و و هفت دقیقه است و پدرم که بیان که متوجه باشد حالت فلج لحظه را شکسته است میگوید تو در ابرها گم شده ای دختر و من میگویم گویم فکر می کنی اتفاقی بیفتد و او عرق ریزان و لبخند زنان میگوید. دستکم کم مطمئنم که در خیلی از خانه ها برنج ته خواهد گرفت و شیر سر خواهد رفت. تابوت تکنون بسته است. اما قیافه مرد را می توانم به خاطر بیاورم. چنان روشن و واضح در خاطرم نقش بسته که اگر به دیوار نگاه کنم می توانم چشمان باز و گونه های سفت و خاکستریش که مثل خاک نمناک هستند و زبان گاز گرفتش را که به یک طرف دهان کچ شده ببینم و این کار مرا دچار احساسی سوزنده و ناآرام آرام می کند. شاید اگر شلوارم در یک طرف پایم اینقدر تنگ نبود این احساس را نداشتم پدر بزرگم کنار مادرم نشسته است وقتی از اتاق بغلی برگشت، صندلی را با خودش آورد و حالا اینجاست است کنار مادرم نشسته چیزی نمیگوید، چانش را روی عصایش گذاشته و پای لنگش را جلوی خودش دراز کرده. پدر بزرگم منتظر است. مادرم هم مثل او منتظر است. مردها دیگر روی تختخواب سیگار نمیکشند و همه ساکت در یک ردیف نشستند و به تابوت نگاه نمی کند. آنها هم منتظرند. اگر چشمایم را ببندند، اگر دستم را بگیرند و بیست بار دور شهر بگردانند و باز به این اتاق برم گردانند، آن را از بویش خواهم شناخت. هیچ وقت یادم نمی رود که این اتاق تا چه اندازه بوی آشغال پس مانده و صندوقهای روی هم انباشته را می دهد. اینکه من فقط یک صندوق دیدم. همان که من و ابراهام میتوانیم تویش بنهان شویم و باز برای توبیاس هم جا می ماند. من اتاقها را از بویشان می شناسم. سال پیش آدم را روی دامنش نشاند چشمایم را بسته بودم و او را از میان پلکهایم هایم می او را محو میدیدم انگار که اصلا زن نبود بلکه فقط چهرهی بود که به من نگاه می‌کرد. و مانند گوسفندی تکان تکان می‌خورد و بأ بأ می می‌کرد. وقتی که بو را شنیدم واقعاً داشت خوابم میبرد. هیچ بویی در خانه نیست که نتوانم تشخیص بدم. وقتی مرا توی ایوان تنها می‌گذارند، چشم‌هایم را می‌بندم، دستهایم را دراز می‌کنم و راه میروم. با خود فکر می‌کنم وقتی بوی عرق نیشکر را بشنوم، دم اتاق پدر بزرگم خواهم بود با چشمای بسته و دست های کرده به راه رفتن ادامه می دهم فکر می کنم حالا از اتاق مادرم رد شدم چون بوی شبیه ورق بازی نو می آید. پس از آن بوی غیر و نفتالین خواهد آمد باز هم راه می روم و درست در همان لحظه که صدای آواز مادرم از اتاقش به گوشم می خورد بوی ورق بازی نو را می شنوم. آنگاه بوی غیر و نفتالین به مشامم میخورد. فکر می کنم حالا دیگر بوی نفتالین را خواهم شنید بعد به دست چپ بو خواهم پیچید و بوهای دیگری را که از لباس زیر و پنجرههای بسته بر خواهم شنید همانجا خواهم ایستاد پس از آن وقتی سه قدم بر بوی تازهی به مشامم میخورد. و با چشمان بسته و دستهای دراز کرده میستم می و صدای فریاد آدا را می شنبم. بچه با چشم های بسته کجا میروی آنشب آن شب وقتی داشت خوابم می برد متوجه بویی شدم که در هیچ کدام از اداغای خانه نبود. بوی تند و گرمی بود. انگار کسی شاغای یاسمنی را تکان داده بود. همچنان که بوی قلیز و سنگین را حس کردم چشمهایم را باز کردم. گفتم بورا را میشنوی؟ آداداش نگاه هم می کرد. اما وقتی که با او حرف زدم چشمانش را بست و به سوی دیگری نگاه کرد. دوباره پرسیدم بورا را میشنوی؟ انگار جایی درختهای یاسمن است. آن وقت او گفت بوی یاسمن هایی که نه سال پیش به دیوار اینجا بود. در دامنش نشستم. گفتم: اما حالا هیچ یاسمنی نیست. و او در جواب گفت: حالا نه. اما نه سال پیش که تو به دنیا آمدی، بوته یاسمن کنار دیوار حیاط بود. شبها هوا گرم میشد و بوته یاسمن مثل حالا بویش بلند میشد. به شانهش تکیه دادم وقتی حرف میزد به دهانش نگاه میکردم گفتم اما آن موقع من به دنیا نیامده بودم و او درآمد آمد که در آن موقع یک طوفان عظیم زمستانی پیش آمد و مجبور شدند باغ را و تمیز کنند بو همچنان آنجا بود گرم متقریبا نمس پذیر بود و بوهای دیگر شب را همراه خود می آورد. به آدا گفتم میخواهم برایم تعریف کنی و او لحظه خاموش ماند بعد به دیوار سفید کاری شده که بر بران افتاده بود نگاه کرد و گفت وقتی بزرگتر شدی یاد میگیری که یاسمن است که پخش می شود نفهمیدم اما لرزش غریبی در خودم احساس کردم انگار که کسی دست به تنم زده بود گفتم بسیار خوب و او گفت بر سر یاسمنها همان میآید که بر سر مردمی که پس از مرگ بیرون میآیند و همه ی شب پرسه میزنند. همانطور که به شانش تکیه کرده بودم بی حرکت ماندم و چیزی نگفتم داشتم به چیزهای دیگری فکر میکردم. به صندلی توی آشپسخانه که به در بزرگم کفشهایش را هنگام باران روی آن که خشک شود. از آن به بعد می‌دانستم که توی آشپزخانه مرده‌ای هست که هر شب می‌نشیند و بیان که کلاه از سر بردارد به خاکسترهای اجاق سرد خیره می شود پس از لحظه‌ای گفتم: مثل مرده‌ای که توی آشپزخانه می‌نشیند. آداب به من نگاه کرده چشمانش را فراخ کرد و پرسید کدام مرده؟ و من به او گفتم همان که هر شب روی صندلی مینشیند که پدر بزرگم کفشهایش را میگذارد تا خشک شود. و او گفت آنجا مرده ای نیست. صندلی برای این کنار اوجاق است که به هیچ دردی نمیخورد مگر خشک کردن کفشها این جریان مربوطه به پارسال است. اما حالا جور دیگری است حالا من جسدی را به چشم دیدم و تنها کاری که باید بکنم این است که چشمهایم را ببندم و باز هم از تو در تاریکی چشمهایم به دیدنش ادامه دهم میخواستم به مادرم بگویم اما او با پدربزرگم مشغول صحبت شد فکر می‌کنید ممکن است اتفاقی بیفتد و پدر پدربزرگ جانش را رو از روی آسایش بلند میکند و سرش را تکان میدهد. دست کم مطمئنم که در خیلی از خانه ها برنج تا خواهد گرفت و شیر سر خواهد رفت.